فصل 19. روز هفتم وقتی از مسجد برگشتیم، خانه پر از جمعیت بود و من که سرم به شدت درد میکرد از فکر این همه شلوغی که تا آخر شب ادامه داشت، کلافه و بی‌حوصله وارد حال شدم و چشمم به امیر افتاد. با سر سلام کردم و بی توجه خواستم توی آشپزخانه بروم. که با اشاره دست امیر به آن طرف حال که مهندس ارجمند با همان نگاه های لعنتیش سر پایستاده بود نگاه کردم. یک دفع دلم هوری فروریخت. بی اختیار نگاهم در اطراف به دنبال محمد گشت و اصلا نفهمیدم جواب تسلیت گوییش را چطور دادم. خودم هم نمیدانم چرا میترسیدم و وحشت داشتم مبادا محمد فکر کند بین من و او ممسعلله بوده است. از نگاه های پر از توجه و اشتیاق او چنان وحشت کرده بودم که انگار گناه نگاه او به گردن من است. آخر هنوز خاطره تلخ خسرو کاملا توی ذهنم بود. چقدر بیچاره بودم. آن موقع که باید دست و دلم میلرزید و عقلم میرسید نفهم بودم. حالا که هیچ تعهدی نداشتم میترسیدم از چه خودم هم نمی دانستم. به هر حال دست پاچه جواب دادم و هر آسان برگشتم و محمد را دیدم که پشت سرم کنار در اتاق کار امیر ایستاده بود و من حتی جرعت نکردم به صورتش نگاه کنم و تازه به خودم اعتراف کردم خرخودتی پس موضوع فقط این نیست که نزدیکت باشه و دورا دورونو ببینی آن شب هم مثل بقیه روزهای قبل میگذشت. و من نمیتوانم حالم را توصیف کنم. دلشوره و استرابی خفقان آور از اینکه این آخرین لحظه است که اینقدر به من نزدیک است و باز از فردا پریشانی است و انتظار و بیچارگی دیوانه ام کرد و از وحشت فردا قلب بدبختم این کار می‌خواست بی‌استد. ولی کور چاره. شب تا دیر وقت خانه پر از مهمان بود. سورا که اثر خاک حالش بد شده بود، عواصت شب بدتر شد و امیر بردش به درمانگاه. بالاخره کم کم خانه خلوت شد و من به هر زحمتی بود توانستم سهر را به خوابانم. بعد از آن همه شلوقی سکوت چقدر آرامش بخش بود. از اتاق بیرون آمدم. افکارم مغشوش و خسته بود و از فشارهای عصبی مداوم تنم کوفت و خرد شده بود. دلم یک گوشه خلوت میخواست که به حال خودم و درماندگی هایم فکر کنم. محمد را ندیدم. کجا بود؟ یعنی رفته بود؟ نه، تا امیر برنگرده نمیره. در اتاق کار امیر را باز کردم و بی وارد شدم. اتاقش پر از وسایل اضافی بود که به خاطر مراسم آنجا انبار کرده بودند. در را آرام بستم چراغ را روشن کردم و نفسم بند آمد. محمد را دیدم که روی سندلی میز کار امیر نشسته و سرش را به پشتی سندلی تکیه داده و به خواب رفته. لرزه بی بی‌امان به جانم افتاده بود. دیدن ناگهانی او ترس از اینکه بیدار شود و مرا ببیند و خودش و بقیه این وارد شدن را عمدی بدانند. یک دفعه هزار جور فکر به مغزم هجوم آورده بود. ولی ناخودآگاه مهوه تماشای صورتش شده بودم. صورت خستهی که توی آن لباس مشکی دوست بود و من در این مدت نتوانسته بودم سیر نگاهش کنم. بی اختیار به یاد شب عقدمان افتادم. این صورت چقدر با آن زمان فرق کرده بود. دیگر صورتش مردانه شده بود و به جوانی آن موقع نبود. چند تار سفید که روی شقیقه هایش پیدا شده بود همراه چند شکن کوچک کنار چشمهایش صورتش را پخته تر و در عین حال به چشمم دوست داشتنی تر می کرد و سینهش در حالی که آرام بالا و پایین می رفت به نظرم پند از گذشته آمد خدایا کسی که زندگی من را زیر و رو کرده بود همه چیز را از من گرفته یا نمیدانم شاید همه چیز به من, من داده بود در چند قدمی بود اما نمی توانستم صدایش کنم دستهایی که روزی آرامش دنیا را برایم داشت اینجا بود و من حسرت زده اجازه لمس آنها را نداشتم خدایا کسانی که تو از بهشت من کنی لعاقل جای دل خوشی دارند من احمق خودم بهشت را از خودم رانده بودم با تکان محمد که دستهایش را روی سینه در هم کرد از چا پریدم و از قهر افکار درهم و هم بیرون آمدم. خواستم فوری بیرون برم که یک آن احساس کردم از سرمایه باده کولر که مستقیم روبرویش بود سردش شده. با دل و ترس اولین چیزی که جلوی دستم بود یعنی سجاده جانماز را برداشتم و پاورچین نزدیگه شدم. در حالی که از حیجان نفسم داشت بند می آمد. آرام خم شدم تا از این طرف میز بتوانم سجاده را رویش بندازم ولی ریشه یک کنار سجاده به صورتش خورد و چشمش نیمه باز شد تنم یخ زد اگر حین دزدی مچم را گرفته بودند حالم بهتر بود خسربان قلبم آنقدر تند شده بود که ناخودآگاه دستم را روی قلبم گذاشتم نگاه محمد یک دفعه هوشیار شد خون توی تنم ایستاد دهنم را باز کردم که حرفی بزنم اما جز اسفات نامفهوم چیزی نتوانستم بیان کنم. فایده نداشت. نمیتوانستم حرف بزنم. رویم را برگرداندم و تقریبا به حالت دو از اتاق فرار کردم. داشتم خفه می شدم. دلم میخواست فرار کنم. خدایا، اگر الان کسی مرا ببیند اصلا خود او چه فکر می کند؟ نه نمی توانستم بمانم کیفم رو برداشتم و با عجله در را باز کردم که به خانه خودمان بروم. باید می رفتم. اما با امیر که زیر بغل سرعیار رو گرفته بود و به سمت بالا می آمدند برخورد کردم امیر پرسان نگاهم کرد و من آشفته حال و دست و پا شکسته گفتم که دلم برای آنها شور افتاده داشتم می رفتم دنبالشان نگاهم را از امیر دزدیدم. مجبور شدم به سریا کمک کنم و برگردم توی خانه. داشتم توضیح میدادم که مادر و سید جعفر و بقیه خواب هستند که در اتاق کار امیر باز شد. وای، خلبم اینگار از حرکت ایستاد. جرأت نکردم حتی یک کم سرم رو بالا بیاورم. میترسیدم. از این که به چشمهایش نگاه کنم میترسیدم. از این که تحقیر شوم. و او با حقارت یا تمسخر یا حتی بی نگاهم نگاه هم کند یا مثل همیشه نادیده ام هم بگیرد. حالا با این وز هر کدام از این رفتارها دیوانه ام میکرد.طعم زهراگین پسده شدن را یک بار چشیده بودم. نمیخواستم دوباره تجربهش کنم. همراه سرع به اتاق خواب رفتم. در حالی که تنم از هیجان میلرزید صدایش را شنیدم که گفت. امیر، من دارم میرم. امیر فوری از اتاق بیرون رفت و قلب من تیر کشید. برای چی؟ این موقع شب کجا میری؟ کار دارم. فردمنی سرکار یا خونه ای؟ امیر همچنان که برای نگه داشتنش اصرار میکرد گفت. نه خونه. صبح میام. خدافز. انگار کسی قلبم را میفشد. رفتنش را بی به خودم می‌دیدم و احساس می‌کردم اگر چشمم به چشمش افتاده بود با تم نگاهم هم اگر نه پس چرا رفت؟ آن هم بلا فاصله بعد از این فضیه او که تمام این شبها اینجا بود. آن شب چه جانی کندم و تقریبا نتوانستم چشم روی هم بگذارم. از این که آن کار احمقانه را کرده بودم از اینکه مثل دختر بچه ها ترسید و فرار کرده بودم از اینکه او پی به احساسم برده باشد و این رفتن ناگهانی مخصوصاً به این دلیل باشد که مرا کوچک کند و به من بفهماند چه احساسی دارد رنج می بردم. هیچ رنجی بدتر از رنج حقارت در مقابل کسی که آدم دوستش دارد نیست و این رنج لعنتی آن شب دوباره تا مغز استخوانم نفوذ کرده بود و آزارم میداد. تا وقتی هوا روشن شد با خودم کلنجار رفتم توی سر خودم زدم خودم را محاکمه کردم و هر لحظه بیشتر از قبل عذاب کشیدم و مگر آن شب لعنتی صبح میشد. فکر اینکه الان دور توی ذهنش به من میخندد، خوردم میکرد. اینقدر به خاطر اینکه احمقانه انان عقل را از کف داده بودم زجر کشیدم که صبح احساس می کردم تک تک استخانه هایم شکسته و خورد است بالاخره تصمیم گرفتم صبح قبل از اینکه که بیاید بروم باید میرفتم. دیگر نمی توانستم با او روبرو شوم. از طرفی فکر مسافرت مشهد فرداره که می کردم دیگر دلم می جیغ بزنم کی حالا حسلی مسافرت داشت؟ ولی کوچاره صبح زود قبل از اینکه امیر و سریا بیدار شوند سردرد و مسافرت فردا را بهانه کردم مادر را گذاشتم و راهی خانه شدم نه دیگر دلم نمیخواست با او روبرو شوم